رسول الله و آله طیبین و خاهرین و لعنی دارم و علا اللهم ارفاق ناجمی المشترلین و برحمت که و رحیم بحثی که بود رجب به مناسبت تمهیل مقدمه اینکه که مرمون شیخ در رساله خجیت و مغنه خودشون فرموده بودن که یا قط پیدا میکنه به خدم شرعی یا زن و یا شرع بعد هردمی مطلبیشان درها بعد, بعد از مطموشه محرر بحث های حوزه قرار گرفت این در حوزه شیعه مقدمه و تمهید مواقع خوجت یا امارات امارات و اصول همین قرار گرفت حالات و رو مورد بحث قرار دادن حالا با اختلافاتی با کماسیاتی تقسیم سلاسی باشه یا سنایی باشه لکن عمده محور بحث این قرار گرفت ما دیون رجمالا یه رو اعرض کردیم که عمده محور بحث به جهت حالات مکلف نباشه ولی طبعا این حالات مکلف مورد بحث قرار میگیره طبیعیست اما محور بحث راجع به تنجز باشه اصلا آنوان رو عوض بکنیم و اون بحث این باشه فصل خاصی قرار بدیم به تغییر دیروز ما فصل چهارم یا ثبوت در کیفیت تنجز اعتبارات قانونی قانون چگونه تنجز فیداده باد چون ارز کردیم که خود خوب یا جن خب اون یک مرحله است که اون که من بیاده لیه اعتبار طبق یک دورات یعنی چیزی رو جل میکنه. یعنی در ذمه مخلط قرار می ده یا برسه حالا اون حقیقتش رو الان نیمه خیلی می جمعا بشه بعد از این, این در مرحله جعل، عادتا سه مرحله قبل از او وجود داره یکی مرحله ملاقات، یکی مرحله خب و یکی هم مرحله اراده و کراحت این سه مرحله رو عادتا ما توی اصول بحث نمیکنیم. کنیم اینطوره. این این بین سران بعد از اون هم مقام جهل بعد از اون مقام فعلیت که طبق این تفسیری که دو روز عرض کردیم یعنی مقام رسانه‌ای کردن حکم یا ارسال رسول و انزال کتب فعلیت و به این معنا اون حکم فعلی شد یعنی ابلاغ شد به اصطلاح فارسی میگیم حکم ابلاغ شد این فعلیت رو مرتبه 4 چهارم یا دومی که بعدا جل هست مرتبه تنجز و وصول به مکلقه یعنی اونجاییست که دیگه با مکلق رابطه پیدا میکنه و مرحله اخیر هم عبارت از مرحله امتصال یا اسیان این تقسیم بندی بود که ما چند بار عرض کردیم. در حقیقت مباحث اصول اصول عملیه و حجاج مربوط میشن به مقام تنجز اصلا ما به جای بخش اینکه حالا عرض پیدا میشه زن پیدا میشه. این مواهز رو یعنی خالات مکلف و معیار قرار ندیم بیایم از خود تنجی و صحبت بکنیم و توضیحاً عرض شد که اون سه مرحله اول ملاکات، حب و بغض و اراده و چرا هم این فقط در اختیار مولاست ما به بو نداریم مخصوصا حالا در کل قوانین تقریباً اینجوره تقریبا مو در کل قوانین نه اما در مورد قوانین شرعی و شریعت مقدسه و مختبه وحی این طوریه ای به مناکات یا اون که به بغت داریم الو کردیم در مقام اثبات و در مقام بیان گاهی در خدا آیات کتاب و در روایات لسان روایات به این مقامات صحبت شده شد مثلا یوریدالله یوتحیرم بعد از اینکه آیه که امون بنا شد بیان شد اون مقام اراده رو بیان می کنید اینالله یو با توابیم و یوهب بل این مقام به بغض رو بیان می مثلا از رجال عوامون علالنسا به ما الله و بعضه هم حالا این مقام ملاق چون وقتی اسناد به خدا داده شد به ما الله این محن واقع و حیقت واقع این مقام ملاق پس گاهی یوگاه توی مقام تعبیر و توی مقام انشاء ملائکات بیان میشه ان شاء الله زمانی وقتی داریم که تصویر در متاسر مثلا الملائکه لا تطقل و بیتن مثلا فيه این باز مقام ملاقات این یعنی به عبارت دیگر گاهی شده تو مقام اصفوا مقام ملاقات بیان شده گاهی هم کو کو مقام ان لا یعبداله یا کان رسول الله یعجب بذاله یحب بذاله بعضی وقتا مقام اراده و کراهت این مقامات به هر حال چه در مقام تقبیر بیاد یا نیاد منحصرن در اختیار حضرت هر و اون نفوس ولوی و نوویهی که تشریف در اختیار اونهاست حالا به هر معنی تصور بکنید این راجع به سه مقام اولی جهر هم که واضحه ده. اون هم که قطعاً سد در صد در اختیار مولا و این دیگه در قوانین بشری هم همینطوره یعنی فرس اگر پارلمانی باشه مجلس باشه مجلس استشاری باشه سلطان باشه نه در هر کشوری هر نظام ValueErrorی داره. در لاخره مرحله جلب اعتبار قانونی اون اغلب به عهده مولاست. فعلیت هم به معنای ای کردن اون هم در اختیار مولاست. تا اینجا شد پنج مرتبه که در اختیار مقنن و قانونگذار که چه ای رو انتخاب بکنه برای بیان. حالا ممکنه وسیله عرفی باشه، ممکنه وسیله خاص خودش باشه یک رسانه ای رو یک وسیله ای رو به تعبیر قرآن، رسول و انبیا و ماکن ناماعذبی حتی ن رسولا. این هم مرحله 5 برره مرحله ششم که ت این دیگه ما بین ماست ما بین مولا و به اصطلاح اصولی ما ابر یا ما بین آنان گذار و به اصطلاح شهر در این مرحله و مکلف در این مرحله هم خود قانونگذار راهی رو تیگ میکنه و هم خود متلف مرحله چشم هم در اختیار عبد در اختیار مکذفه لیکن اینجور نیست که از مرحله تشریق کاملا جدا بشه بحث خودشه که سابقه قدمه اشاره کن این راجعه به این مقامات حفظانه و ارتباطاتی که داریم پس که اینجورد باید باید فعیلی بیشه تا تنجز بشه که رسانه ایش بکن اگر رسانه این نکرده الان شما علم خدا بکن تنجز بشه فعیلی نه فعیلی همه که گفت بهش برست یا نرست فرسیم تو روزنامه گفتن آینامه شد فرسیم به استاندار گفتن شما بگنی یادن این فعیلی شد دانستن شما مقدمه انتصال شماست که تنجز تنجز همون حکم فیلی حکم فیلی نه میرم ما الان بحثمون تو مقام تنجزه وقتی این تو مقام تنجز تحلیل میکنیم که حقیقت این مقام تنجزه شرح بدیم پس ما در مبارزه حجج و امارات بس. ابلاغ ماهی خوشه ابلاغ نشه خکم جل بشه ولی ابلاغ نشده شاید نه بخت شاید نشده ما در اینجا تمام بحثی رو واقعیت نه بحث شاید نداریم اینجا الان نظر ما رو واقعیت اگر شارع جعل حکمی کرد ابلاغ کرد میشه فیلی به دست ما برسته ابلاغ نکرد میشه غیر ممکن ممکن به دست ما هم برد. اما هنوز ابلاغ نکرده خوب در قرار مثلا ما میدونیم مگه قانون تبسیل کرده هنوز ابلاغ نشده میدونیم قانون همه هنوز ابلاغ نشده ما میخویم بگیم این قانونی ولی قانون هست رو شده چون ابلاغ نشده معیار احکام جزایی نمیشه احکام کیفری برش بار نماشه این همین بود که پیوزان مطرح کردید که آیه که هر سم آیه خوی اشکال میکنه. ایشون میگه مراد از حکمه شرعی در عباراتی فکم حکمه اون دید عباراتشونه. آقا او ما اونجا توضیح یه روز صحبت که توضیح کافی دادیم که فعلیت پیش مرام آقا استاد شاه یک معنا فعلیت پیش عبورزی یعنی معنا شرعیه در کفای وی و و ما معناه دیگری برای فعلیت کردیم. ما این معنا با قانونی بیشتری داره. دید دید دید دید دید. همین تمام بعد همینه. چرا خب ابلاغ میشه تا سنت بیا در در چون دیگه مقام ابلاغ کشته دیگه میخواد. جعل شده، اعتبار شده هنوز بر زجر زد نشده. نه نمیشه تا ابلاغ نکنه. و ما کن ما از دیگری حتی نباز رسولا. این نباز رسولا اشاره میکنه. درکش فهمید؟ من بیان بگیریم برای خب هم نمیشه بدون بدونه یعنی تا نرسته به این مرحله مثلا شما ملات رو بدونی خب ببغضه بدونیم یا رازو کراهز بدونی, بدونی. جرل هم بدونی. اما هیچ کدوم اینها مقا... مثلا اون ستا تا مقام جرل نرسید یا جرل رو به مقام ابلاغ نردیم تنر جز پس ما در اصول اون سه مرحله اول رو بحث نکردیم اون سه مرحله اول یعنی بحثش به نتیجهای واضحه نمیرسه در شریعت دانشجو واضحه در قوانین بشری چرا اونا بحث میکنن چرا چون قانون رو تجلی اراده ملت میذارن وقتی این اراده ملت هم تابع آمارها و ارقا است که ارائه میکنن مثلا میگم فلان برنامه اقتصادی دارای این باره وضع جامعه اینطوره فعلا در این مرحله هستیم این برنامه ناپره این رو آزاد میگذارند، صاحب نظرها افراد نظر میدن اما در قوانین شریعت ما یه مقداری فرق داره با قوانین عادی از اینجا جدا میشیم چون نحوه ملال رو چون عالمه غیر هم درش هست احاطه به ملاقات قات پیدا نمی‌کنیم اینکه که ان الملائک لا تدخلت فی مثلا تمثال رو نمیتونیم با قواعد بشری درستش بکنیم درست فهمیدی پس برنامه روشن شد که یکی مرحله جعدی که از کردم خیلی مناسبه ما در اصول یک فصل از اصول را راجع به حقیقت اعتبار کیفیت ایتبار ترابطه به اعتبارات و این مباحثی که مربوط میشه به اعتبارات بخش اول قرار بدیم بخش دوم مسادر تشریع، منابع تشریع، این فصل مستقلی از کلم نه فصل اول الان در کتاب های اصولی متعارف حوضه ما هست نه فصل دوم و فصل دوم که منابع تشریعی بود این در اصول تدیمه ما مثل معالمین ها مطرح بود اصول احل سنت هم مطرحه و که بعد شیخ آمد در اون رسائل شیخ و چهار رساله شیخ رو با مواردی که در موارد زهورات و جلد اول بقید ما جلد اول اصول مبارس الفاظ بود زمینه کردن دیگه خواهی نخواهی بحث منابع تشریف برداشته شد چون قطع زنبین های که جز منابع تشیی نیست، اینا ها مقام رو پس بحث دوم. منابع تشریع بشه که در فعلیت تاثیر تمام داره بخش سوم هم بخش مسائلی که مربوط میشه به به اصطلاح تنجس من دیروز گفتم 5 تا بعد در مقابل شما 4 تا چون من مؤخرا مباحث امتصال هم یک مبحث جداگانه در اصول قرار میگیره درباره امتصال مایه مواردی که مربوط به امتصال بشه جای همون متفرق است من سوالام نظر 5 تا دیروز حساب این 4 تا رو یه بحث واجه به مقام انتصال بشه و خصوصیاتی که داره آخرین بحثی هم در اصول قرار بگیره که این اقتصاات به اصول اسلامی داره یعنی این به نحو اصول قانون گذاره در تمام قوان نیست موارد ظوراته مواظور ها تنجم قرار میگیره و کل موازظور رو یه بحث قرارگه نه این که الان پنج نج پنج مصد اصول رو تو ظهورات بردن. برای که ما این خلاصه یه بحثی بود که ما دیروز مطرح. و بحثیه بحث تنجیز که الان محله کلامه تس ما به جای این بحثی که مرحوم شیخ مرحوم مصطفی شیخ مطرح کرده حالا متکلم یا بعد از اینکه ساقفایا آمد و حجش رو مقصد ششم قرار داد و اصول رو مقصد هفتم و تاوزر ترجیرم مقصد هشتم سه تا مسئله قرار داد کلمات شیخ رو ما گفتیم به جای این بحث ها اصلا عنوان بحث رو تنجیز قرار بودیم سه بحث موندمشتون توی یک بحث نیاز نداره که تا بحث بکنیم اون وقت بگیم تنجّز یا به امارات میشه به امارات میشه یا به اصول عملیه این در تنجّز تظاهر تا روزن در زیل هر کدوم واقع بشه تا روز امارات در ذیل خودش اصولم در ذیل خودش دیگه بحثی به تا تعارض مستقلاً نباشه وقت در مبحث تنجّز از کلیم این،, این چیزی رو که به استناد نظر قانونی هنوز هم مورد قبول بشره. هست این معیار رو قرار داریم حالا الان توضیحشی میگم بگیم تنجز تابع ادراک و انتقاش سورت دو سورت با در ذهن جمع بشه تا این که تنجز پیدا بشه یکی کورا این که مثلا خمر حرام یا خمر نجزه یکی هم صغرا این که این خارجی خمره تا این دو سورت نیا تنجز نمیاد تنجز تابع انتقاش این دو سورت وقتی وقت بیم بگیم به طور کلی اون صورتی که در ذهن پیدا میشه باید به یک تخصیمی در باب قوانین، تخصیم میشه به دو قسم یا صور انتباریه نفسه یا صور ابداعیه نفسه که نفس اونها رو ابداع میکنه صور انتباعیه مراد ما از همون اماراته و حجاجه و عدهله و طرو صور ابداعیه هم مراد همون اصول عملیه هم. است این تقسیم. حالا قبل از اینکه این, این تقسیم رو وارد بشیم، بحث اولی که مطرح میشه، با بر مقدمات بحث، اینکه حقیقت تنجز بیان بشه. ما میآشوی در طول بحث‌هاینده ان شاءالله توضیح خواهیم داد. مثلا اولا بحث میشه ما مرحله ای به نام تنجّس و مرحله ای به نام شهلیت داریم یا نداریم؟ مثلا ما مرحله ای به نام تنجز داریم یا نداریم؟ مثلا اینطور بگیم طبیعت قانون و طبیعت اعتباض قانونی چی میخواد از شخص باشه مثل مولانا صدا عزمش پدر از بچه مثلا گندش به هر شوع بذار ولی در جوی که این نحوه سلطه است چه به نحوه قانون اجتماعی باشه طبیعت اعتباض قانونی این است که فقط قوامش به جعده چیز دیگه نمی‌خواد تا جعده رو هم داره فعلیه هم داره تنفیذ داره و نظام مثلا عبد باید هر طرف مثلا در نظام عبد, عبد و همین این ساعت یک سااعت از مروج پرس مطلب چازی رو به امره هست فرش می کرد.عنی اون تا اراده کرد اون یغیتون به احتیاجی به بیان نداره بود. این همدی که از یوز و قایف ابه هم که انتحصال و زیفه اوذ یکی از وظایف اندم استخبار و سوال از مل است. این مشکل نداره خود دقت بکنید. این مبهسیری که ما مارا مطرح میکن اینا ازش محدور عقری لازم نمیاد انگ شال بالا شما نقیزه یا ارت استفاده نقیزه هیچ چی مشکل نداره؟ لیکن صحبتی که ما الان اون نظام کلی است که اغلا رو تلی کردن یک سیره اغلا رو. جاهل مقصر جاهل قاصر دیگه اون بحث دیگه جاهل قاصر آخر دیگه. جاهل قاصر آخر این یک بحثی دارن که اون جاهلی که مقصره اصلا به خاطری که عامل حساب میشه یا عدل میدونم اون بحث سوال کرده. سؤال به من می‌نیست سوال بکنه از چی سوال بکنه از مشهدش همین که مشهد تقویده نه به فلیت رسونده در خواهد او باز نه بیایند اصلا نیم بخواد مشهد تقویده این بعد مراقبه از مولای خودش سوال بکنه آیا جعلی شد آدم قرار داد یا نه این مستهی نیست خوب دقت بکن تو این بحث ها استحاله رو مطرح نکنی مستهی نیست من چرا نمی کنم بگی؟ چون تو عبد من ازیاد محضور اقلی نمی آده؟ چه مشکل داره؟ نه چه محتیم؟ یعنی محضور عقلی نمیاد توی جامعه نمیشه جامعه رو به هم می دیده یعنی 24 ساعت مردم باید هی سؤال کنم هی زن کنم تکیفی شد جابعه رو به هم می دیده بل بلا اشکال قبول دارم اصر و حرد و اختلال نظام اما اجتماع نقیزه نمیاد ممکن از یک مساله بسیار عالیه باشه این بار دنبالش بدونه امکان داریم مشکل نه امکان بگم لازم نمیاد اجتماع نریزه این افتفاق نریزه محالی لازم نمیاد لذا بحث ما در, در حقیقت در سیر اغلایی الان متعارف در جامعه ای که ما میشنسیم اغلایی این سه مرحله هست. یه مرحله جهله یه مرحله رسانهی کردن، یه مرحله هم تنجده سه مرحله. این برای آرامش جامعه برای که واقعا بتونه قانون برای تکامل جامعه قدم برداره این سه مرحله رو قرار دادن برای هر مرحله ام اثر خوده این درسته الان اغلا اینه الان بنای اغلا بینه. و در مرحله تنجز این رو میبینم مهم در مرحله تنجز نه واقع قانونه مثل قوانون فیزیک و شیمی و نجوم مهم تو مرحله تنجز وجود صورتی از قانون و نصاق در ذهن مکلف تا این صورت نیاد به هر نظریه حالا اون بحثی اینکه این صورت چجوری باید بیاد تو بحث دیگه‌ست تا این صورت نیاد در ذهن تجسد پیدا نمیشه و لذا شما در کل احوال و اصول تو با دو این باشین که اون صورتی که آمد چه مقدار ارزش قانونی داره مثلا شما می که این آف قبلا نجس بود چون کار نبود بعد تصمیم کر شد نمیدونم آیا نجس هر هنوز یا پاک شد چون بلقل ما قدر لا لای نجس هم. خب شما می دونید استصال نجاست بودن این که جای بحث نیست می من سابقه هم نجس می دم ولی نیست بحث نیست یعنی یه صورتی در زن شما ابداعی حالا به قول یا انتقادی یا ابداعی این صورت آمدم بحث در اصول اینه ارزش این صورت در تنظیم چقدره. ارزش این صورت در تنجید چقدره پس شما بعد از این کن لعب حاصی که در فقر میخونین در تصویر و در اصول میخونین در حقیقت اون بحشش که مربوط میشه به مثل حجر خبر و اجماع و اجماع و, و تمام اینها در حقیقت مرجعش بازگشش به تصویر تنجیده این تصویر اون هم حقیقتا اینه نقطه حقیقیش اینه تا مادام شما صورت ندارین مثلا در فیزیک شما صورت علمی باش با دنبال شما داریم به صورت که نیز در فیزیک قوانین فیزیک قوانین بهداش قوانین تف اینا تابع صورت نیست، اینا تابع واقعش پس سؤال اول این است که آیا اعتبار غانه مثل فیزیکه <تصفح> این که ما در مرحله تنجز دلست کردیم نقطه فنی روشن شد نقطه فنی مرحله تنجز میگه آقای اعتبارات قانونی نقطه فیزیک نیست اعتبار قانونی تا به اون صورت ذهنی اگر صورت ذهنی آمد شما اعتبارات قانونی وقت اون صورت ذهنی را هم دو تا بیدونند هم باید این قانون در ذهنش برسته که کل خمر نجز کل خمر نرام هم این این خمر تنجز قوامش به اینه تنجز قوامش میده البته ما در اصول بیشترین بحثی که در تنجز میکنیم که همونجوری گفتین مراد مرحله حکمه ولی مرحوم شه گفت اعلام ان المكلف اذا اون بخش موضوع رو مطرح نکردن اونی که الان ما در تنجز داریم و الا واقع تنجز به هر دوس اون ما اینی که در دنیایی، یعنی اون که بحثی که در اصول شده و شما انجام میدید با دائما دنبال این نقطه بگردین این صورت ذهنی شما آیا اولا آمده یا نه آمده چه مقدار ارزش داره این صورت ذهنی شما حالا مرمون شیخ به جای صورت ذهنیه فرمود یا خط یازد یا شهر این رابطه داره با صورت ذهنیه به لحاظه وضوح و عدم وضوحش لطه معیار بحث ا مهیار بحث سقط جهت قفع و و شک میهید بررسی و تحلیل صور زهنیهی که برای شما میشه اون وقتی از کردیم این صور ذهنی به طور کلی اولا بحث اول پس بحث اول بحث اول این است که آیا شما مرحله فعلیت و تنجز میخوایید یا نه اون مرحله جل کافیه یک سال دو مرحله جل کافی نیست مرحله فیلیاد را میخوام. به مورد اینکه مرحله فیلیاد راستی تنها جز هم روشه. به مورد اینکه مرحله فیلیاد راستی دیگه مرحله سوم دی نه تنها جز نداریم یعنی چی؟ یعنی شما نه اینکه از قانون گذار. در ز اول شما مراقب از قانون گذار باش سوال بکنی. در این فصل دائما از بسال رسانی باش سوال بکنی. این اسمش هم وجود احتیاطی این رو ما در اصول اینطور معنا می‌کنیم، وقتی می تعبیر اصولی، احتمال هم در قوانین منجده گاهی اسمشی می داریم تنجیب در احتمال گاهی اسمشی می داریم تنجز محتمال روشن شد پس این بحث دوم اون بحث اول شد بحث دوم تا ای شد دیگه کافیه با ای شدن تنجز هم هست پس بنابراین وظیفه شما چیه؟ مرتب در رسانه مراجعه اونجا مرتب به مجلس باید مراجعه بکنید اینجا مرتب در رسانه باید مراجعه بکنید حالا این اصطلاح اینجوریه که میگید مرحله تنجز نداری اما ما در اصول اصطلاح دیگه ازش بکار داریم اسمش روچیم تنجیز و احتمال طبیعت قوانی اینجوریه که احتمالش هم مراجعه است خب اگر احتمال منجز بود دیگه این بحثای قطع و زن نوشک وقتی احتمال منجز بود خب زن هم به طریق اولا بود قطع هم به طریق بود. دیگه بحث بود اگر ما آمدیم گفتیم مجرده خب دقیقه ننظر فنی اصلا طبیعت قانون اینجوی که مجرده احتمال هم منجزه اگر مجرده احتمال منجز شد مثل, مثل مثلا فراس این شبیه امور مهمی در زندگی و مثل سند به منجربه که احتمال یک در حضاب میبسن به اونجا احتمال منجده بگیم قوانیدن از این قبیل هست چون برمیگرده به صلاح جامعه به صلاح سرد سالت دنیا و آخرت اگر بخواهی مخالفت قانون نیسته سمه نیسته که سم کرده باشید پت شما از دقت دقیق ما قبل خب از این که باید برسه خط اوزن نوشک و, و این حرف بشید باید یکی دو تا مقد آیا ما یک مرتبه بعد از فعلیت به نام داریم؟ یا نه؟ فعلیت مطابق با تنجس. او شايفه؟ فعلیت مطابق با تنجس. پس ما باید بیام بگیم این امکان داره که فعلیت مصادره باشه و الزام احتیاض واجب باشه. ولی ز این احتمال مونایچه است. احتمال داره که مشکل داره. لیکن انصافاً عقلای این قبول نکرده نه آمده ها با... یا ضرر و حرج و اصر و نظام و خیلال این را قبول نکردن اما محال هم نیست که مجرد احتمال منجز اگر از این مرحله رد کردیم اون محبت چی میرسته؟ نوبت این مرحله شرح مرکب تنجز میرسته بزرم خب دیگه هم اینا محبت بگن احتمال قانون شون ضرره در خب نه همینه میگه میدونم قبول دارم منم حرف شما قبول نه اینا این ای نمیگه خب کسی که اینو گفت دیگه ای بحث تمام دیگه مشکل نداره که وقتی به جلو احتمال منجزه باشه خب زن به طریق اولی مونجزه بعداً به طریق اولی خب احتمال منجزه خب این بحث می‌کنه که بگیم قد زن نوشک بود نوشک شد پس بنابراین بحث یک روش به یک قانون یک ضابطه معین داره فکر رو مشکوک نکنید اگه ما بنا جلو تنبیه احتمال قائل بشیم بگیم بحث معنا نداره بلکه به حاضر دقیق اگر بخم به قول روزیا فلسفه اصول فقه بگیم باید بگیم مقام فعلیت با تنجّز مساویه فرض نمیکنه همین که رسانه این‌قدر تعیین شد منجز شد به شما یا نرسید صورتی داشته باشین نداشته باشین اون کار نداری هر صورتی ولو ضعیف باشه همین که صورت ضعیف آمد این خودش کافیه ولو مستند به دلیل هم نباشه طبیعت قانون اینجوریه لذا تا شما یک احتمال داریم باید دنبال احتمال بدونیم از رسانه سوال بکنیم تا بگه نیست این قانون نیست نداریم ما خب ندارم طرف بحث میکنم ما الان این رو نداریم اما کسانی که مثل بعض از آقا مثلا بکتر اخباری که احتیاط واجبه یا کسانی که حق و طائع بکتر ما در اونجا توضیح داریم حق و طائع رو باید نکته. دقیق بکنی حق و تاهه رو باید به یکی از دوست تعبیر برگردونن یک مقام فعیلیت کافیست برای تنجز به مجرد فعیلیت تنجز شما نمیدونی برو سوال بکن احتمال دیگی برو سوال بکن دو احتمال منجزه آیا این امکان داره برای امکان داره حتی ممکن است یک حیث گروه برنامه شون بیم باشه مرسب مثلا میگن تو باید هر دو ساعت یک ساعت اون مسئول زن زنی هستش نیستش و ممکنی ام... استحاله نداره اما دنای و اغلا در قوانی بر این نیست الان آیا شارع مقدس میتونی این کارو رو کنی؟ بله این کار رو عملا هم بنابر معروف در شبهات هموال و در شبهات فروج و دما این کارو رو کرده یعنی گفته مجرد احتمال منجزه این وجوب احگیات یعنی مجرد احتم اما شاره در کل تکالیف بیشین کار نکرده. یعنی شاره در این مقام در تکالیف مثل اعلاء همیشه متعارف باقی می‌کرده. پس این شد مقام دوم قبل از اینکه ما وارد این بشیم، مقام سوم که آمریل قبول کردیم که یک مقام چهل داریم، یک مقام 40 داریم، یک مقام 100 داریم، اینجا ما این, این بحث رو پیش می‌آیم. به اما شو؟ اینجوری مدارک اصلا در اینم یه دراهه اصلا متقابل اثر به یه اثر ثانوی صبح هم تبیین نمی‌کنید. بحثا سوال ابهام. نه ابهام نیست. الان جوابش بعد از اون این چیزی که خواستم می‌شروع میشه. بعضی ما از ما میخواسته. اما تعصب چیه؟ یه مبدئی هستش که او یادم خواست. یه مرحله تعصب هم دا داره. تناقض در اصل بشریات می‌کنه. یعنی راستش مطمئن شدی؟ اجمالاً بدان که احکام و تو متنجز شده احکام احکام اجمالاً از تو ببینه عزیز من. این تنجزی که شما می فهمید درست در هم نوشتن این تنجز مال قبل اصلا بررسی احکامه این اسمش علم اجمالی این تنجزی که علم اجمالیه برم و چیز علم اجمالی یک تعبیر دیگری ما... خب اون آقا میگه داری شما میگین نداری منم میگم نداریم لا شما در حقیقت می‌خواید بگید احتمال مادام در یک دایره بستر که اسمش احتمال در اطراف علم اجمالیست منجزه احتمالی که در دایره بحثیست منجز نیست. شما اینو بگید من تعبیر علمی حالا من به آقا هر جایی که میگن علم اجباری منجز یا مثلا احتمال منجز ما این تعبیر میکنیم میگیم آقا احتمال هم دو جور منو زوره بحث یا یه احتمال به اصطلاح احتمال دغتن یه احتمال بازه دو جور احتمال داریم به طور کلی یک احتمالی که در اطراف علم اجمالی چون بسته است، دو محور داره یا تو این کاسه تو این کاسه این ما اسمش رو احتمال بسته آه احتمال در اطراف علم اجمالی من تعبیر من این که احتمال بسته اگر احتمال در یک دایره بسته باشه این منجزه احتمال در یک دایره باز باشه بسته نباشه این منجزه این بحث دیگری اینا مثلا منم یه روز با فلسفه بحثش ماخره تمرکز به این معنا که اگر ادلاق کنم رسانایی هم کنم منم به مقدار خودم تلاش کردم نرسیدم برای من منجز نیست اگر منجز نشه اقام ندارم برو تکلیفم یعنی بفته و من نرسیدم من نرسیدم بحثم کردن نرسیدم آیشم آمده روایتش هم اومده منم بنام... خب بعضی فقيه‌ها 20 سال یک فرقه میده بر بر این که مشکل نداره که من اینه که اگر ادلاقش کرد اما به من نرسید با اینکه من تحت خودم در حکم کنم در موضوعی که فرض نمیخواد در اینجا مادام صورتی از اون نیامد فقط مجرد احتمال این صورت منجز نیست بله اگر اون احتمال من به جای تعبیر اصولی و متارس تعبیر خودم بکنم اون احتمال در یک دایره بحثه باشه اگه ما اوغلای تر ببینیم احتمال در دایره بحثه رو منجز میدونیم احتمال در غیر دایره بحثه رو منجز نمیدونی این همین بحث برائت به استقابه اذهار حالا من یه تعبیر دیگه گفتم شما می‌خوین فضا تعبیر دیگه ای رو بس بکین میگن احتمال در اطراف علم اجمالی منجز احتمال در غیر اطراف علم اجمالی منجز نیست یه دین کنه احتمال مطلقاً منجزه چه در اطراف علم اجمالی باشه نباشه ادهی هم فرص مثل مرحوم مجلسی در این کتابه اینش میگه احتمال مطلقاً منجز نیست حتی در اطراف علم اجمالی احتمال مطلقاً منجز نیست حتی در اطراف علم اجمالی چون امام فرمون کلو شهره لکه حلال هستر بنده و حرامون به اینه این به اینه کامل علم اجمال رو خارج میکنه پس سه تا رعی در تنجیز احتمال به چنه کلی رو مثلا میکنم مجوز ای جوزی روشن الان بحث ما اولا یک در دایره بسته نیست مراد من از احتمال شما از این طول بسته موضوع من با شما کلا فرق میکنه مراد من احتمالی که در دایره بسته نیست دایره نداره احتمال باز این احتمال با ادعای رو منجز دونه در احکام ادعای رو منجز دونه ما در این تحلیل قانونی شو می‌بینی سر تعجوزا دادن سنتیز و علن تجیز چیه سرش تخلثمش بقول آقایون سرش اینه که ما مقام تنجوز از مقام علیت جدا بکنیم یا نکنیم اگر از مقام علیت جدا نکردیم قطعا با اتهام وتنجوز بشید بگیم آقا ما مرحله به نام تنجوز تا حث ابلاغ و فعلیته تام شود انجام بدیم پس دیگه احتمال ماجرا ابلاغ بلا نه دیگه ایلینا که نمی دیگه نیست در قوان این اجازه بدید ما این رو توضیح دادید ما این رو توضیح مفصل دادید که ممکن است یک کسی بگه ابلاغ یعنی قانون گذار در هر خونه ای زنگ بزنه اون طرف بیاد پشت بوشیش بشه؟ بگه هسته همت برقل ابلاغ این ای امکان داره اما این نیست اینم متعارم نیست نه اینکه این امکان نداره اونی که متعارفه ابلاغ در حد معرضیت یه روز توضیحش ارز کردیم اون جیه چه این بود که این بود که این بود این بود که خیلی بشه تا که ارزم بازید دنباله یعنی یک رایی بود اول مصران شدیم اجل... پس یک رای اینجوری که اصلا ما دنبال فعلیت نیستیم نه ما هم در دنبال خب این یکی چی شد کی دیگه قانون ابلاغ کرد در معرضیات منم که در معرضیت میگن تنجوز نشد این اصلاً تنجوز نشد آ شو مرا اومد برجمی نشد اومد برجمیو خن میگه نه این که تا دیگه جای روشن شد مطالب این مطالب رو قبل از ورود توی بحثه و و اصول عملیه باید تحلیل بشه افتاد چارچوهاش کاملا روشن بشه و این بحث همش بحث های قانونیت. الان بنایه و غلایی میگن اگر حفر ابلاغ شد در معرضم بود شما هم فرض کردی پیدا نکردی برای شما حفر فعلی هست اما منجل مید سوال. قطعی سؤال آیا بحث داره بحث داره اما برای من نه چرا؟ چون من بشه رسیدم؟ لذا برای من چون منجز نیست خودت زقت بکنید چون منجز نیست اجازه چون منجز نیست احکام جزایی بار نمیشه روستش یک رحمه میگه نه همین که ابلاغ شد فعلی همون احتمالش هم منجزه تو باید اینقدر بگردید تا یقین پیدا کنید حکم نیست خب زقت بکنید نه نه فهض کافی نیست این باید یقین پیدا کنی حکم نیست یقین میخواد یقین میخواد که دیگه حکم نیست قول وقت برای شما ارتکاب بکن و الله احتمال منجزه روشن شد من نیست میخواد میگم این مبنا رو قبول دارم ترح میدن در مسئله روشن داشید در مسئله ترح پس بنابراین این مسئله این فهضی رو که ما قرار دادیم یک نقطه فنی داره تفکیک ما بین مقام فعلیت و مقام تنجس بگیم حکم برای شما فعلی هست خوب بگه کنید میخوامش در میخوام اما منجز نشده این سوال یه شما تصور بکنید اول تا هر کسی آزاد شما کسی رو من قبول نمی‌کنم اگر شد بگه فعلی شد تموم شد دیگه من فرق تفیکی که بین تنجس و بین مقام فعلیت بال میستند. پس من غلظم الان طرح مسئله است. اینکه میخوام. من خودم اعتقادم بنده بینه که بله اغلا برنامشون بینه. الان تفسیر کلی اغلایی بر قوانی بینه. یه مرحله فعلیت هست. یه مرحله تنجز هست. اون احکام جزائی بار میشه بر مرحله تنجز. بعد تنجز. و لذا به نظر ما براعت براعت عملیت خیلی هم واضحه هست. دو برنامه در واقعم ان شاء الله بعدم درم دوباره توضیح میدم مثلا برایت پیش ما جزء اصول عملی نیست چرا جزء اصول عملی نیست چون در اصول عملی نکته فنی اصول عملی یک نوع ادگار یک نوع تطرفه اگر جایی تطرف نبود اصلا عملی نیست اگر جایی تطرف نبود این که میگی شما یک قطره خون در یکی از این دو انا افتاد در یکی واقعی است در دو تا تطرفیه واقعا توی یکی افضال. این واقعیه. این انتباهیه. اما اینکه که شما دوتار ازش اجتناب میکنی این تصرف شماست. این ابداع شماست. یکی دیگه شو شما درست میکنید. پس نقطه فرمی در اصول وازی یک نحن تصرف باشه. ابداع باشه. در براقه از اصلا جای تصرف نیست. میگه شما پهست کردید بله. حکم برطرد باشه منجز نیست. چون منجزی نیست اگر انجام بدهی اقوبت نداری جزا نداری اینکه تو توش تنزیل نشده که تصرف نشده این مجموعه بناهای اقلالی هیچ دخت تصرفی درش نسته به رضا اینشالله ارزی نکنیم خلافاً لما علیه شیخ و کلما جامعیم بعد شیخ که اصاط البراه رو جزو اصول قرار داره اصلا جزو اصول نیست به نظر ما چرا بعد ترده این شما ترزید و سالالله